جن خودخواه نوشته ریچارد داکینز پینوشت های فست چهارم ماشین ژن در توضیح کارکرد مغز را می توان با کامپیوتر قیاس کرد. این جمله منتقد فاقد قوه تخیل کافی را اذیت می کنن. البته از این نظر که مغز از خیلی جهات با کامپیوتر فرق دارد مثلا طرز کار درون مغز با آن کامپیوتری که فناوری ما ساخته متفاوته است حق با آنهاست اما این به هیچ وجه از درستی جمله من مبنی بر اینکه آنها کارشان مشابه است کم نمی کند. در واقع مغز، کامپیوتر سرخودی است که کارش پردازش اطلاعات است. بازشناسی الگوها، زخیر مدت و بلند مدت داده ها, تنظیم عملیات و مانند اینها را به عهده دارد. حالی که پشت کامپیوتری می می‌بینیم خوشبختانه و متاسفانه بستگی به دیدگاهمان گفته‌های من, گفته من درباره آن تاریخ گذشته است من نوشتم که فقط چند ترانزیستور را می‌شود درون یک جمجمه جا داد ترانزیستورهای امروزی در مدارهای مجتمع قرار دارند امروز تعداد ترانزیستورهایی که در مغز جا شود سر به میلیاردها میزند. همچنین گفتم که کامپیوترهای شطرنج باز به سطح یک غیرهرفهی خوب رسیدند. اما امروز چه بسیارند برنامه شطرنج شترنج که اکثر افراد بجوز بازیکنهای واقعا خوب را شکست میدند و قابل نصب روی کامپیوترهای ارزان قیمت خانگی اینها استادان بزرگ شترنج را به مبارزه میطلبند مطلبی که از رایمان کین گزارشکت شترنج اسپکتاتور در شماره 7 اکتبر 1988 آن آمده به عنوان نمونه نقل میشود. هنوز وقتی بازیکن مشهوری از کامپیوتر شکست میخورد جنجال به پا میشود ولی شاید بعدها چنین نباشد خطرناکترین هیولای فلزی که تاکنون مغز انسان را به چالش کشیده نام عجیب فکر ژرف را برخود دارد که بیشک ادای احترامی است به داگلاس آدامس آخرین شاکار فکر ژرف در از میدان بدر کردن رقبای انسانی در مسابقات آزاد آمریکا در ماه اوت در بوستون بود من هنوز از رتبه بندی کلی عملکرد فکر ژرف اطلاعی ندارم تا بر اساس آن قضاوت کنیم در رقابت های سوئیس چه دستاوردی خواهد داشت ولی شاهد برد قدرتمند او در مقابل یک کانادایی پرتوان یعنی ایگار ایوانوف بودم که یک بار کارپوف را شکست داده بود خوب دقت کنید شاید عاقبت شطرنج این باشد در اینجا بازیکن را حرکت به حرکت دنبال می کند واکنش که این در برابر حرکت 22 فکر جرخ چنین است حرکتی شگفت آورد. هدف به میدان آوردن وزیر است و این فکر موجب موفقیت سریعی می شود. نتیجه چشمگیر است با پیشتوی وزیر جناه وزیر را در هم کوبیده است پاسخ ایوانوف به این حرکت را چنین توصیف می کنند. حرکتی نومیدانه که کامپیوتر به طور احانتامی زیان را نادیده نهایت تأخیر. نهایت تحخیر دیتی؟ به بازپس گرفتن وزیرش اعتناعی ندارد. به جای آن در فکر حمله برای کیش و مات هست. سیاه دستیم می شود. تنها فکر جرف نیست که رقیب شطرنج بازان سطح بالای دنیاست. از نظر من آورتر از آن زبان آگاهی بشر است که آن شخص منتقد باید از آن استفاده کند. فکر جرف به طور اهانت و میزی حرکت نومیدانه ایوانوف را ندیده میگیرد فکر ژرف را تهاجمی توصیف کردند کین درباره در میگوید که امیدوار به نتیجه است اما از لحنه کلامش چنین برمیآید که به همان راحتی میتواند ای مثل امیدوار را برای فکر ژرف هم به کار ببرد من شخصاً در انتظار روزی هستم که یک برنامه کامپیوتری برندی مسابقات جهانی باشد بشر یک درس فروتنی لازم دارد توزیح درباره تمدنی با فاصله سال نوری در صورت فلکی ممرعت المسلسله وجود دارد کتاب آ مثل آندرومدا و دنباله آن پیشروی مرعت المسلسله درباره اینکه آیا آن تمدن ناآشنا از کهکشان فوقالعاده دوردست مرعت المسلسله آمده است یا آنطور که من گفتم از ستارهی نزدیکتر در صورت فلکی مرعت المسلسله نظری یکسانی ندارند در داستان اول آن سیاره در فاصل دیویست سال نوری قرار دارد جایی در کهکشان خود ما ولی در کتاب بعدی آن بیگانه در کهکشان مرعت المسلسله هستند که حدود دو میلیون سال نوری از ما دور است خانندگان کتاب در صفحه پنج و به میتوانند بنابرای خود به جای دیویست دو میلیون را بگذرند در اصل قضیه که مورد نظر من است تغییر ایجاد نمیشود. فرید هاید نویسنده گرانقدر این هر دو رومان یک ستارشانس برجسته است و ابر سیاه او از نظر من از جالب ترین داستانهای علمی تخیلی است. بینش امیغ علمی او که بنمایه این داستانهایش است تزاد زننده ای با سیل کتابهای های جدید ترش دارد که با همکاری سی ویکراماسین نگاشته است. ارائه تصور نادرستی از داروینیس عنوان نظریه کاملا بر مبنای اتفاق و انتقاد تند و گزنده آنها از شخص داروین کمکی به حدثیات در غیر این صورت جالب توجه گرچه دور از واقعشان درباره منشع بین ستاره ای حیات نمی کند. ناچران باید این تصور غلط خود را تصحیح کنند که برجسته بودن پجوهش کرد در یک رشته به معنی صاحب نظر بودن و او در زمینه‌های دیگر نیست است و تا زمانی که این تصور نادرست به قوت خود باقی است محقق‌های برجسته باید در مقابل سوء استفاده از آن خویشتنداری به خرج دهند توضیح درباره عبارت راهکارها و فوتوفن‌های کلی زندگی صحبت کردن درباره حیوان، گیاه، یا ژن طوری که گویی آگاهانه میدانند چگونه به بهترین وجه موفقیت خود را بیشتر کنند مثلا نرها را قماربازان اهل ریسک و مادهها را سرمایهگذاران محتاط در نظر آوردن. در میان زیست فعلی فعلی کاریست عادی. این یک شیوه ساده و راحت برای توضیح دادن است. مگر اینکه آنهایی که فاقد صلاحیت لازم برای درک استفاده از آنند به کارش ببرند یا آنهایی که صلاحیتشان زیادتر از آن است که متوجه آن شوند برای مثال من هیچ راهی برای سر دراوردن از ای در انتقاد از ژن خودخوا در مجله فلسفه ندارم آن شخصی به نام ماری میتگلی نوشته و جمله اول آن نشان میدهد بقیه مطلب از چه قرار است عبارت نقل قول شده؟ ژن نمیتواند خودخواه یا غیر خودخواه باشد. همانطور که اتم نمیتواند حسود، فیل نمیتواند انتظائی و بیسکویت نمیتواند فرجام باشد. مقاله در دفاع از ژن خودخواه من در یکی از شماره های بعدی آن مجله جواب دندان است به این نوشته بسیار تند و زننده. به نظر میآید بعضی ها که بنا تحصیلی که کردهاند بیش از ظرفیتشان فلسفه جذب نمودهاند نمی نمیتوانند این ابراز پژوهش را در جایی که لازم نیست به کار نبرند به یاد گفته های پی پی مداور درباره جاذبه فلسفه افسانه میافتم برای خیلی ها که اغلب دارای ادبیات و علاقه پژوهشی گسترده اند آموزشی که دیدند فراتر از توانایی ذهنشان برای تحلیل امور است. در توضیح این بارد شاید وقتی آگاهی پیدا می شود که شبیه سازی جهان در مغز آنقدر کامل شده که مغز می مدلی از خود نیز داشته باشد من موضوع شبیه سازی کردن جهان ها را در مغز در سخنرانی گیفوردم در 1988 جهان های عالم صغیر مورد بحث قرار دادم هنوز برایم روشن نیست که آیا بحث درباره مسئله مهم آگاهی میتواند به کمک ما بیاید یا نه اما اعتراف میکنم به خوشنودی هم از اینکه مورد توجه سر کارل پوپر در سخنرانیش درباره داربین واقع شده بود دانیل دن فیسوف درباره آگاهی نظریه ای دارد که به استعاره شبیه‌سازی در کامپیوتر عمق بیشتری میدهد برای پیبردن به نظریه او باید دو مفهوم مربوط به دنیای کامپیوتر را بهتر درک کنیم. یکی مفهوم ماشین مجازی است و دیگری تمایز بین پردازشگرهای متوالی و موازی. باید اول اینها را توضیح دهم. هر کامپیوتر یک ماشین واقعی است. سخت افزاری است درون یک جعبه. ولی در هر زمان فرضی در حال اجرای برنامه است که اجرای آن برنامه باعث می شود شبیه ماشین دیگری، یک ماشین مجازی باشد. مدت چنین چیزی در مورد همه کامپیوترها صادق بود، اما کامپیوترهای جدید که مناسب کاربر است یوزر user-friendly، شفافیت ویژهایی با آن دادن. در زمان این نگارش تقریبا همه قبول دارند که نبض بازار کاربر پسندی در دست اپل ماکنترچ است. موفقیت آن مرحون رشته برنامههایی به صورتی است، ماشین سخت افزاری را شبیه نوع دیگری از ماشین یک ماشین مجازی با تراحی خاص خود و متناسب با ذهن و دست بشر به نظر می آورن سازوکار چنین سخت افزاری از قبیل کامپیوتر من فوق پیچیده است و سازگاری چندانی با فراست آدمی ندارد آن ماشین مجازی به مکنداش یوزر اینترفیس معروف است در صورت یک ماشین است مثل یک دستگاه صوتی دکمایی برای فشار دادن و کنترل اسلایت ها دارد ولی ماشین مجازی است دکمه ها و اسلایت گردان ها پلاستیکی یا فلزی نیستند به صورت تصویری روی صفحه اند و آدم می تواند با حرکت یک انگشت مجازی روی صفحه آنها را بفشارد یا بلغزاند ما به عنوان یک آدمین احساس را داریم که آن ماشین را کنترل میکنیم زیرا عادت کردیم به اینکه با انگشت چیزهای دور برمان را جابجا کنیم من که برنامه مفصلی نوشتم و مدت 25 سال با انواع کامپیوترهای دیجیتالی سر و کار داشتم میتوانم تصدیق کنم که کیفیت کار با مکنتاش یا نظایر آن با همه هایی که از کامپیوترهای قبل از آن داشته متفاوت است این برنامه چنان راحت و خوش دست است که انگار این ماشین مجازی بخشی از ادامه بدن خود آدم است داده زیادی با آدم اجازه میدهد به جای مراجعه به راهنما از هوش عمومی خودش کمک بگیرد اکنون به آن موضوع زمینه‌ساز دیگری که درباره علم کامپیوتر باید بدانیم برمیگردیم. موضوع پردازشگرهای متوالی و موازی کامپیوترهای دیجیتال امروزی اغلب پردازشگرهای متوالی‌اند آنه یک کارگاه اصلی برای محاسبه دارند و همه داده ها تنها از یک گلوگاه الکترونیکی عبور می‌کند و پردازش می‌شود به دلیل اینکه بسیار سری عمل میکنند این تصور اشتباه در ما پیدا میشود که همزمان چند کار را با هم انجام میدهند یک کامپیوتر متوالی مثل استاد شطرنجی است که ظاهرا همزمان با 20 تحریف بازی می کند. اما واقعیت این است که دور آنها می چرخد. برخلاف استاد شطرنج، کامپیوتر چنان سریع و بی سر صدا گرد وظایف خود می گردد که هر انسان که با آن سر و کار دارد به اشتباه می پندرد. کامپیوتر توجه خاصی به شخص او دارد. در اصل، کامپیوتر به طور متبالی و یکی یکی به کار برانش توجه می کند. در پاسخ به تقاضای سرعت سرساموورتری در اجرا، مهندسان ماشین هوشمند پردازشگر موازی را ساختند. یکی از آنها ها ابر رایانه پروست که چندی پیش به دیدارش نایل شدم در این کامپیوتر ردیفهای موازی شامل چندصد ریز تراشه بسیار قوی وجود دارد که هر کدام از نظر توان معادل کامپیوتر روی میزی هم. این کامپیوتر مسئله را که به آن داده می شود میگیرد و به طوری به بخش های کوچکتر تقسیم می کند که بشود آنها را جدا از هم بررسی کرد و آنها را به دسته از ترانیدها واگذار می کند. این ها آن بخش از مسئله را میگیرند، حل می, می کنند، پاسخ را تحویل می دهند و برای دریافت کار جدید اعلام آمادگی می کنند. در این زمان گروه دیگری از ها در حال ارائه گزارش راه های خود هستند. به این ترتیب کل آن ابررایانه بسیار سریعتر از یک کامپیوتر متوالی معمولی به پاسخ نهایی میرسد. گفتم یک کامپیوتر متوالی معمولی با گرداندن سریع توجهش از کاری به کار دیگر این تصور غلط را ایجاد می کند که یک پردازشگر موازی است می توانیم بگوییم یک پردازشگر موازی مجازی درون سخت افزار متوالی قرار دارد نظر دنتین این است که مغز بشر درست عکس این کار را انجام داده است سخت افزار مغز اساساً موازی است مثل آن کامپیوتر ایدین و نرمافزاری را اجرا می کند تراحی آن به اشتباه تصور پردازش متوالی را در ما ایجاد می کند. یک ماشین مجازی پردازش متوالی آن ساختار موازی سوار است. از نظر دند، مشخصه بارز تجربه درونی تفکر جویا و آگاهی یکی بعد از آن یکی جیمز جویسی است. او معتقد از بیشتر حیوانات از این تجربه متوالی محرومند و مغزشان را مستقیما در وضعیت اصلی پردازشگری موازی به کار می اندازند. بدون تردید مغز بشر هم برای بسیاری از کارهای روزمره که فقط برای حفظ یک ماشین بقایی پیچیده لازم است مستقیما از ساختارهای موازیش استفاده می کنند. اما علاوه آن مغز انسان یک ماشین نرمفذار مجازی ساخته است که تصور فریبنده یک پردازشگر متوالی را شبیه سازی می کنند. زه با جریان متوالی آگاهی خود یک ماشین مجازی است که به شیوه کاربر پسند مغز را احساس می کند. درست همانطور که برنامه مک یوزر اینترفیس به طرز خوشایندی با وجود کامپیوتر جسمانی محفظه خاکستری روبرو می‌شود. معلوم است چرا ما آدمها ماشین متوالی مجازی لازم داریم در حالی که گونه های دیگر بدون آن و تنها با دستگاه ساده و موازی خود کاملا قانه شاید در مورد کارهای سخت اساساً یک حالت متوالی بودن وجود دارد که انسان وحشی باید به انجام آن تن در دهد یا شاید اشتباه می می‌کند که از این نظر ما را از بقیه موجودات جدا می‌کند او همچنین بدین باور است که ساخت آن نرم افزار متوالی تا حد زیاد یک پدیده فرهنگی است ولی باز برای من معلوم نیست چرا ممکن است چنین باشد اما باید اضافه کنم زمانی که این را می نویسم مقاله دند هنوز منتشر نشده و توضیح من بر اساس به یادآوردن سخندانی او درباره یکبسون در 1988 در لندن است. به خواننده می شود به توضیح خود دند وقتی منتشر شود مراجعه کند. نه به توضیحات من که یقینه ناقص و آمیخته به نظرهای خودم و احتمالا با آب و تاب بیشتر است. نیکولاس همفری روانشناس هم فرضیه گیرایی دارد در مورد اینکه چگونه تکامل توانایی سازی ممکن است به آگاهی منجر شده باشد همفری در کتابش چشم درون وضعیت جالبی را پیش می‌کشد که در آن موجوداتی که مثل ما و شامپازا بسیار اجتماعی‌اند باید روانشناسان خوبری باشند مغز باید همزمان بسیاری از جنبه‌های جهان را با هم در نظر گیرد و شب‌سازی کند اما بیشتر جنباهی جان از خود مغز سادهتر است یک حیوان اجتماعی در جهان دیگر زیست می کند جهان همسران رقیبان شریکان دشمنان بالقوه برای موفق بودن در چنین دنیایی آدم باید بتواند با مهارت حرکت بعدی آنها را پیشبینی کند پیشبینی آنچه قرار است در آن جهان بیروح رخ دهد در مقایسه با پیشبینی چیزی که قرار است در دنیای اجتماع رخ دهد قطعهای از یک کی کرد روانشناسان دانشگاهی که اساس کارشان علم است در پیشبینی رفتار بشر مهارت چندانی ندارند همراهان اجتماعی یک فرد با استفاده از حرکات ظریف های صورت و نشانههای دقیق دیگر اغلب به طور حیرت آوری در خواندن ذهن و حدس زدن رفتار احتمالی بعدی او خوبرهاند همری معتقد است این مهارت روانشناختی سرشتی در حیوانات اجتماعی بسیار تکاملی یافته است تقریبا مانند یک چشم اضافی یا یک عضو پیچیده دیگر است. چشم درون عضو روانشناختی اجتماعی تکامل یافته است که درست مثل چشم بیرون ما عضوی برای دیدن است. استدلال همفری را تا اینجا قانع کننده می دنم. اما او در ادامه میگوید آن چشم درون با خود نگری کار می کند هر حیوان احساسات و عواطف درونی خود را ملاک درک احساسات و عواطف دیگران قرار می دهد. کار آن عضو روان بر اساس خودنگری است. نمی آیا این بس میتواند در درک آگاهی به ما کمک کند یا نه؟ ولی به حال هنفری یک نویسنده خوش قلم است و کتابش گیراست. توضیح در باری ژن رفتار ایثارگرانه. گاهی صحبت درباره ژن ایسارگری یا دیگر رفتارهایی به ظاهر پیچیده بعضی افراد را سردرگم می کند. آنها به اشتباه فکر می کنند که پیچیدگی رفتار باید به نحوی درون ژن جای داشته باشد. آنها میپرسند چطور ممکن است تنها یک ژن برای ایسارگری وجود داشته باشد، در حالی که کار هر ژن فقط رمزگذاری یک پروتئین زنجیره است. اما صحبت از ژن چیزی فقط به این معنی است که تغییر در آن ژن باعث تغییر در یک چیز دیگر می شود. تنها یک تفاوت ژنی که حاصل تغییر جزیات مولکول درون سلول است، باعث تغییر در فرایندهای پیچیده جنینی و بنابراین مثلا در رفتار می شود. برای مثال در پرندگان تنها دلیل یک رفتار پیچیده کاملا نو یک ژن جهش یافته برای ایسارگری برادرانه نیست. بلکه آن جن جهش یافته فقط در یک الگوی رفتاری پیچیده از قبل موجود تغییر ایجاد می کند. مؤتمل ترین آغازگر این وضع رفتار پدر مادرانه است به معمول پرنده ها دارای ابزار عصبی پیچیده ای هستند که برای غذا دادن و مراقبت از بچه هاشان لازم است این هم به نوبه خود ته چندین نسل تکامل کند و گام به گام از اجداد پیدا شده است از غذا هم که در قبول وجود ژنی برای مراقبت های برادرانه تردید دارند اغلب ثبات نظر ندارند چرا در مورد ژن مراقبت پدرمادرانه پدر مادرانه که به همان اندازه پیچیده است شک نمی کنن. الگوهای رفتاری از قبل موجود در این مورد مراقبت پدرمادرانه پدر مادرانه را میتوان به صورت یک قاعده سردستی مثل به همه چیزهایی که در لانه جیغ و می کنند و دهانشان باز از غذا بده در نظر گرفت بعد جن قضا دادن به خواهد یا برادر کوچکتر را می توان با در نظر گرفتن اینکه این قاعده پیش از موقع فعال شده است سر و سامان داد. پرندهی که آن جن برادری را به عنوان جهش جدید با خود دارد به راحتی قاضی سرانگشتی پدر مادری را کمی زودتر از یک پرنده عادی فعال می کند. او به جیغویخ و دهان باز چیزهایی که در لانه پدر و مادرش هستند به خواهر برداری توجه نشان میدهد. طوری که گویی آنها جیغویخ کنها و دهان بازهای لانه خودش یعنی بچه هایش هستند رفتار برادرانه نه یک رفتار جدید و پیچیده تازه پیدا شده بلکه در اصل یک تغییر کوچک در زمانبندی رشد یک رفتار از قبل موجود است چون ما اغلب تدریجی بودن تکامل را فراموش میکنیم چنین تصورات اشتباهی پیدا میشوند یاد می میرود که تکامل سازگارانه با ایجاد تغییرات کوچک و گام به گام در ساختارها یا رفتارهای از قبل موجود پیش میرود توضیح درباره زنبورهای بهداشتی. اگر اصل کتاب پانوشت میداشت یکی را به توضیح این که نتیجه کار آن زنبورها چندان شسته رفته نیست اختصاص میدادیم همانطور همانطور که خود روتنبوهلر چنین کرده بود از تعداد زیاد پرگناهایی که بنابر این نظریه نباید رفتار بهداشتی نشان میدادند یکی به صورت بهداشتی رفتار کرد بر اساس گفته خود روتنبوهلر ما نمی توانیم این نتیجه را ندیده بگیریم بگذریم از اینکه چقدر به این کار تمایل داریم اما ما داریم اساس فرضیه بهداشتی را بر داده های دیگری قرار می دهیم. در آن پرگنی غیر متعارف جهش یک توضیح احتمالی ولی نه چندان محتمل است توضیح درباره این عبارت که این رفتاری است که در کل می شود برچسب ارتباط را روی آن گذاشت حالا احساس می کنم از اینکه ارتباط حیوانات را اینطور در نظر بگیریم راضی نیستم من و جان در دو مقاله استدلال کردیم که بیشتر های حیوانات نه برای رساندن اطلاعات، نه برای گول زدن، بلکه بیشتر برای فریبکاری یک علامت وسیله‌ای است که یک حیوان با آن از نیروی ماهیچه حیوان دیگر استفاده می‌کند. آواز بلبل اطلاع دادن نیست، حتی رساندن اطلاعات گول زننده هم نیست. یک خطابی پرتکلف و ترقیب کننده جادویی است. در رخنمون گسترش یافته این نوع استدلالها به نتیجه منطقی خود می رسند و من بخشی از آن را به طور خلاصه در فصل سیزده این کتاب آوردم. کربس و من چنین استدلال کردیم که آن علامت ها حاصل تاثیر متقابل چیزهایی که زه خانی و فریبکاری می یک رویکرد بسیار متفاوت به کل بحث علامت های حیوانی را آموز صحابی به دست می دهد. در مربوط به فصل 9 های صحابی را فراتر از آنچه در چاپ اول این کتاب آمده بود مورد بررسی قرار می‌دهم. پایان